حکایت در بیشی مستجاب و دعوه در بغداد پدید آمد، حجاج یوسف را خبر کردند، بخوندشو گفت دعای خیری بر من بکن، گفت خدایا جانش بستان، گفت از وحر خدای این چه دعاست، گفت این دعای خیر است تو را و جمله مسلمانان را. ای زبر دست زیر دست آزار، گرم تا کی بماندین بازار، به چه کار آیدت جهان داری، مردنت به که مردم آزاری، به چه کار آیدت جهان داری، مردنت به که مردم آزاری،